شهریست پر ظریفان و از هر طرف نگاری یاران سلای عشق است گرمی کنید کار چشم فلک نبیند زین ترفتر جوانی در دست کس نیفتد زین خوبتر نگاری هرگز که دیده باشد جسمی ز جان مرکب بردامنش مبادا از این خاکیان قباری چون من شکسته ای را از پیش خود چرانی که مقایت توقع بوسیست یا کناری می بیغش از دریا وقتی خوش از بشتا سال دگر که دارد امید و آری در بوستان حریفان مانند لاله و گل هر یک گرفته جامی بر یاد روی یاری چون این گره گشایم وین راز چون نمایم دردی یو سخت دردی کاری یو سعب کاری هر تار موی حافظ در دست زلف شوخی مشکل توان نشستند در این چونین دیار